تن زن چو به زیر فلک بیباکی می نوش چو در عالم آفتناکی چون اول و آخرت بهجز خاکی نیست انگار که در خاک نی بر خاکی چون واقفی ی پسر ز هر اسراری چندین چه خوری به بیهد تیماری چون می نرود به اختیاری کاری خوش باش در این نفس که هستی باری چندان که نگاه میکنم کنم هر سوی از سبز بهشت است و زکو جویی، صحرا چه بهشت شد ز دوزخ گویی بنشین به بهشت با بهشتی رویی. در شعبد خانه جهانی آر مجوی، بشنو من این حدیث و زنهار مگوی، با درد به هیچ درمان مطلب، با غم بنشین خرم و غمخار مجوی.